جنسه سی سی سی فرمان الحمدلله رب <الحمد <لله> العالمين <الحمد <لله> <الحديقت> و صلی اللہ علی محمد و حالق فاهرین الحدیقه تو سالس تو الحدیقه تو از سالس تو فی مالیت علق و به اطفا کتاب کتاب سندینیه که مشتمل بر پنج حدیقه بود، حدیقه سوم بی ما به افعال. در خصوص احکام و مطالبیست است که متعلق به افعال مربوط به افعال میشه. پس در اینجا در این حدیقه سوم ما احکام افعال رو خواهیم میگه یختص صور مزارع او بل اعراب یختص صور مزارع او بل اعراب فعل مزاره یعنی مشابه به خاطر شباه به اسم مختص به اعراب یعنی فعل مازی و فعل عمر مبنی هستند. بحث زیادی روشون نداریم اما فعل مزارع معرب است. یخ سر مزار او به رعا فیرتف او پس مرفوم میشه میگیم رفتش به چیه؟ میگه رفتش مثل رفت محتدا به عامل معنوی است میگیم اون عامل معنوی کدومه؟ میگه فیرتف او به تجرد ان ناسبه و جازم یعنی حوامل لفظی مگر نخواندیم که مبتدا، اسمیست مجرد از عوامل لفظیه آه؟ و مخبرون هم همین تجربت از عوامل لفظی باعث شده بود که بشه چی؟ مرفو میگه اینجا جام فعل مزاره مجرد از ناصر نستنده و جازم میشه مرفو الان میگه یزره و زیدون یزره و زیدون یقوم و امران الان این یزره و و این یزره و یقوم ما این نیم مزمون علامت رفعه این واسه چی مرخو شده؟ جواب میدیم به خاطر اینکه ان ناسبه و نواسب نداشته و جازم هم روش نبوده تجرده از این دوتا باعث شده که بشه چی؟ همین بو مجرد بودنش از ناسب و چاسب میگیم خوبالا منصوب به چی میشه میگه ویون سبو به عربعت احروفه و منصوب میشه فعل مزارع به چهار حرف چهار حرف از فعل مزارع رو منصوب میکنه سلام ویون سبو به عربعت احروفه چهار حرف یک اولیش لند برای نفی تأکیدیست لند وحیل تأکید نفی المستقبل این لند برای تأکید نفی مستقبل نفی که قرار در آینده بشه ما میگیم نخواهد زد این نخواهد زد و اگه بخوایم تأکیدش کنیم میگیم چی؟ لند یز ربه یعنی هرگز نخواهد زد به تأکید نخواهد زد آه. برای تأکید نفی مستقبل و کی دوممی کیه و معناها از سببیتو و معنای کی سببیته خدمت رو ارز کردیم که معنای کی ناسبه سببیت نیست بخواهد دیایتون باشه در حدایه بگفت کی به معنای چیه؟ به معنای لام تحلیل دستایی که گفتیم اینها نیست کیه هر دومسته نیست اگر سببیگرد و علتی فهمیده میشه به خاطر وجود حرف جر است قبل از که که در تقیی عبارت رو خدمت شما با جزره دادیم یکیش گفتیم عبارت اینچنینی بگیم جه تو کی ان کرمنی تو کی ان کرمنی اینجا که چیه؟ جه تو کی ان توکرمنی کی اینجا چیه جرده دیگه حرف مستعی که برای حرف مستعی پس اون جزوه که رویتون دادیم رو چه کردی؟ تا عبارت رو جزوه دادیم انا باز دوباره دادیم اون جزوه دادیم یکی یکی ستا تحکیب احتمالی جه تو کی ان توکرمنی بعد دومیش گفتیم که باشه جه تو لکی تو کرمنی جه تو لکی تو کرمنی که چیه صد درصد حرف نصب است و مستری صد درصد حرف نصب است تو مستری به دلی که حرف جر سر حرف جر در نمیاد. سومین بامی گفتیم باشه جه تو که تو کرمنی که اونجا مثال میزد تو حوامل ودایه اصلا تو کای اطفاله به جنب تو و کی توکنمنی احتمال داره که چی باشه؟ کی حرف جر باشه بعدش ان در تغییر و احتمال داره کی حرف نصب باشه و لام حرف جر قبلش در تغییر که گفتم این دوممی به اینطوره حال اگر کی حرف جر باشه معناش تببییته اللخست، چون به اگر حرف مستری و حرف نصب باشه صد درصد معناش چیه؟ معناش مستریت تعبیل مستر میره و هیچ کونه معنای دیگری نداره و اگه سببیتی بهمی میشه این سببیت خاطر لامه به جرم مقدر قبلت در جایی که نباشه و معناها از سببیتون ان ان چیه؟ وحیه هر کن مستری حرف مستری یا بهش میگن موضوع حرفی اونی تو که ان و یعر کن مستری حالا اگر ان بعد از ماده علم بیاد چیه؟ ان مخفف است، مسققن است و بین اون ان و فعلش اگر بیاد یه چیزی فاصله میکنه سین فقط فرقد ولتی بعد ال غیر اونی که بعد از ماده علم یعنی ماده یقین میاد غیر ناصب هست. یعنی ان مستری نیست علما ان سيكون منكم مرزا علما ان سيكون منكم مرزا در و فی ان علتی بعد از زنده وجهان در مورد ان انی که بعد از ماده ذن میاد ها ماده گمان میاد دو بحث میتونه ان مصدریه باشه ها میتونه ان غیر مصدریه باشه می عن باشه می تونه عن غیر باشه یعنی اگر من بعد داشتم گفتم زننتو عن یقوم, یقوم زید زننتو عن یقوم زید می تونم بخونم عن یقوم من بشه عن جی بخونم یقوم بشه مخفف است مسقل ذمیرش ان اسمش یوم زیتون خلاص اون ماده‌ای صورت که ان مخفف از مسقل میگیره بهتره که بگم ان سیغو مودو ها ان سوف یوم زیتون تو یه چیزی واسه پس اون که بعد از ماده زن میاد درش دو بچه ها درش دو بچه و فیئا الاتی بعد از زن بچان اذن چیه میگه و ازن للجواب بر جواب ببین برای جواب به کلام محادب بدید و عمل او رو جزا بگی او برگشته به ما گفته چی؟ آتیکه میام کونه تو من گفتم ازن اکرمک این ازن اکرمک در واقع جوابی به سخن او دادم و در این حال اتیان او که یک عملیست رو بهش چکار کردم جزا دادم احتیان رو گفتم چی؟ گفتم اگر اومدی جزاشی میشه که منم فرا اکرام و ازن و هیل الجواب و جذا و تنسه بوهو مصدرتن مباشرتن مقصودن به هیل و شرط داره ازن ازن نصف میده فعل مزاره به شرط اینکه که چی واقع شه؟ اول کلام واقع شه من بگم ازن اکر مک اگر گفتم انا ازن انا ازن اکر مک باید بگم اگر گفت آتی کرد من برایش نمیدم انا ازم اوکرمون دیگه این ازم میشه حرف لعب رو دیگه عمل نمیکنه چرا چون در صدر سخن واقع نشون مسدد نیست مباشرتن باید بچسمه بونده اگر بینشون فاصله شد دیگه عمل نمیکنه اگه من گفتم یه نفر گفت آتی کرد بهش گفتم ازم انا اکرموک انا مدتن اکرموک باید مرفوع بخوانم ازن انا اکرمون مباشر مست درست؟ مقصودا بههل استقبال و از اون دو تا فعل از اون فعلی که بعد از ازن میاد مقصودن بهی به اون فعل به اون فعلی که از از اون دو تا فعل یکی اون مقاطب میگه یکی رو متکلم میگه مقصود به اون فعل متکلم چی باشه؟ استقبال باشه آینده باشه اگر حال باشه با ان نمیاد چون انمال استبال اگه زمان حال باشه اصلا نمیشه که ازن نمیشه نسل نمیشه مثلا به من میگه آتی من میگم ازن اوکره مک چرا چون یعنی اون به من میگه آی من در آینده میان خونه شما منم میگم ازن اوکره م من منم در آینده داره چیکار میکنم اکرام درست هست. هیچ مشکلی نیست ولی اگر ولی اگر یه نفر به من گفت اوه او هیپوک، به دوست دارم به دلایل منده. او هیپوک. من اگه گفتم ازان، ازان اساد بوک. من هم توجه کار میکنم، تصدیق میکنم، راست میگی این ازان اساد ده بوکه. این نمیتونه منسوب بگیم، بگیم ازان اساد ده بابا صدر کلام هست، مبادشرم هست، بگیم از این اساد ده چیه؟ استقبال اراده این ازن و صدقوی یعنی من الان تا رو تصدیق میکنم میگوید نه اینکه در آینده تصدیقت میکنم منام اون میگه من الان دوست دارم شما رو منم میگم منم هم من هم همین الان میگم تو راست میگوید یعنی الان راست میگو. چون زمانش زمان حال است دیگه امکان استقبال ندارد لذاقه است ولی این دیگه نه پس اگه یکی از این شرط ها بره دیگه ازن نصب نمیده و میشه حرف لقب حرف غیر آمه معناشو داره ها در همین صورت هایی که بگید چی؟ نصب نمیدهد ازن معنای خودش رو که جواب و, و جزا هستش رو داره جواب میدیم به متکلم جزای کارش هم بهش میگیم میگیم جواب تو که میگی دوست دارم اینه که راست میگیم و جزات هم اینه که ما تو را راستگو میدونیم اما نصف در کار یعنی حکم لفظی نداره و تنسبه تنسبه فایدش میخوره به ازن نصف میدهد ازن فعل مزاره رو مسدرتن در حالی که مسدر باشه در حالی که مباشر باشه این دوتا محسودن به هر ازتباه این سفر اون مسدرتن و مباشرتن حال هستن از برای فاید تنسبه یعنی زن. این محسودا به استقبال حال است از برای مفعول بود یعنی هو، یعنی فعل مزارد ازن در حالی که مصدر و مباشر باشه و اون فعل مزارد در حالی که مفتوطش استقبال دو تا حال از فاعل اومده، یه حال هست نه نو ازن اکرمک یعنی هم صدره، هم مباشره، هم اراده شده از این فعل اکرمک استقبال اینو به کی بگیم؟ لمنغال ازوروک به یه نفری که به شما میگه ملاقات کنم کنم و یجوز الفصل فسل و بلقسم گفتیم درسته که مباشر باشه میگه ولی اگه قسم بینشون فاصله کنه بگیم ازن و لاحه اشکالی نداره یجوز الفصل فسل و مشخص حالا اگر یک زمانی فا و وا اینم خوندیم باست تو عوامه اگر یک زمانی فا و قبل از اذان واقع شد یعنی مثلا اون بالا گفت و با یا گفت و اذان اگر فا و قبل از اذان واقع شد چطور میگه دو وجه بعضی گفتن صدارتش از بین رفته به وسیله فا و باب. لذا عمل نمیکنه بعضی گفتن چی نخ فا و این جمله را عطم میکنم به جای اول کلام بازم اول کلام واقع شد. لذا عمل میکنه یعنی اگر فا و واو قبل از مواقع شد چی قبل از از واقع شد دو نظر هست بعضی میگن صدارت به وسیله فا و واو از بین رفته لذا دیگه عمل نمیکنه بعضی گفتن نخیه فا و حرف و جمله را عطم میکنم به جای اول کلام صدارت هنوز در جای خودش می دوستاره که الان. پس بالا بالای این و بعد از تالیاته. لر واب ولفا بعد از تالیاته. ولی اون ویه تالیه ی دو تا نقطه زنی تالیاته. بعد از عتالیاته. یعنی ایزان عتالیاته. بعد از ایزانی که تادیش شده لر واب شده لر یعنی واقع شده بعد از واب ولفا بعد از واب و جهان دو سواله. ازن که بعد از فاو و دو صورت یا میتوانید اون رو چه کنید؟ منصوب بخوانید و بگید فاو و باغ صدارت از بین نبرده یا میتوانید مرفوع بخوانید و بگید صدارت از بین تک حالا تکبیل بحث نواسه به پید مزاره و یون سبب به ان مزمرتن نصب داده میشه با ان مقدره مزمره یکی مقدره لایون به عن مزمنتا جوازن اونم به شکل جوازی یعنی میتونید ان رو بیارید ظاهر بشه میتونه ظاهر نشه یعنی میتونه مقدر باشه میتونه ظاهر جوازن یعنی تذمیرش و اذمارش تقدیرش چیه جایزی بعد در حروف عاطفه بعد از حروفی که العاطفه ده عط کننده هستند اون حروف اون ب مزاره رو علا اسم صحیح بر بله یک اسم صریح بالا اسم سریع می مینویسید اسم غیر مشتق اسمی که هیچ اسمی که هیچ گونه رائحه ای از اشتقاق رو نداشت باشه اسم سریعه. پس اگر فعل مزاره اطب شد به جای اسم صریح در این صورت اون ب مزاره یا باید با ظاهر یا با عن مقدر چه شده باشد منصف شد؟ چرا؟ به دلیل اینکه فعل مزاره فعل بر اسم عت میلی اون اسمی اسم،, اسم سریع نباشه اسم مشتق باشه مثل یخرج خرجول حیمل من میگه و مخر خرجول میگه اشکالی نداره به هم عت میشن. فعل مزاره عثم میشه به جای اسم ماشتر مغیرات صبحن و اثر نه اثر نه به جای المغیرات. اشکالی نداره. چون اسم فاعل دیگه پس اگر اسم سریح نبود احتیاج به نیست چون شرف فعل اسم خود فعله و هم میشه اما اگر اسم سریع بود حتما باید انداشته باشه حالا یا ظاهر یا مقدر تا مستر محول حد بشه به جای اسم سریح. اسم حد بشه به جای اسم نه فعل به اسم الان اسم سریعه نه بود مثال للبس و و تقرر عینی للبس و و تقرر اینی. للبس و عباعتن و تقرر اینی احب و این یه ده ده. احب من لبس شفوفی من لبس شکورتی درست شو الان نگاه کنید لبس مستر هست یعنی اون لا لبس لام ابداداییته لبس و حواهات مبتداست مضاف مضافه نه مبتدا احبو خبرشه علایه متعلقه به احبو من لبس شکورتی متعلقا به این و تقرع اینی گفته. رو. تقرع نگفته فیلو مزاره حامسه یا یقر رو تقرع اینی تقرع گفته چرا من سو گفته به عنو مقدر بده که تقرع رو مخواسته عرض کنی به جای لبس مستر اسم سریعه دیگه اسم مشتق نیست مستر خودش اصل مشتب خودش جامده الان تقرده فعل مزاره رو نمیشده حد بکنیم به جای چی؟ تقرده رو حد بریم به جای لبس. مجبور شدیم یه نمه اندر بگیریم تا اونم تحویل به مستر بره مستر به مستر چیه؟ بشه للبس و عباعتن و قررت و عینی تحویل به مستر بره بشه و قررت و عینی احب و علیم لبس شبونه جناب این شعر مادر یزید یزید لعنت الله علیه فاین شاهده یکو نگاه کنید یک درست میگه هومن ابیات ل میسون ل این بیت مال ابیاتی است از میسون میسون شاهده بنت بجدر الکلبیته دختر بجدر کلبی امرأة معاویه زن آقای معاویه بوده علیهل حاویه نفرین بر معاویه که بر او جهنم خدا بود قاله ها میگم معاویه یک روزی به شکار رفته بود یا بیرون رفته بود این دختر دهاتی رو دید و این رو با مال و منادی که داشت غیره و این رو گرفت آورد به قصر قالها. این رو این عبیات رو گفت هینه نقل ها منال بدون این قالت گفت اون خانم نیستون این عبیات رو هینه نقلها. زمانی که معاویه نقل داد این خانم رو منال بد به علال حضر. از بیابان بادیه به شهر به شام آوردش حضر و تا ها باش ازدواج فضیقت اون خانون دلش تنگ شد و علیه ال علیه و استیلا پیدا کرد بر او چیره شد غم و غصه از بیابون آورده به شد اونجا قوا وقال الا معاویه تو بهش گفت انته فی ملک عظیم گفت تو در یک پادشاهی عظیمی هستی و ما تدری یا و ما تدرین قدره بود. و ما تدرین محمد هسته بیگه اون زنه انته فی ملک نظیمه و ما تدرین قدره اون تا در یه ملک عظیمی هستید و قدرش رو هم بکید نمیدونی نمیفهمی چقدر ارزش نمید اونم عصبانی شد و انشدت الابیاته و انشدت اون میسون الابیاته این عبیات رو گفت. درست شد که یکیش اینه گفت للبس و عباعتن عباعت ای این چادرهای عربی پشمی که دوتا دست ازش میاد بیرون که از پشم شطور هم معمولا درست میکردن. این روش میگردن الان هم به همین چادرهای معمولی عباعت اطلاع میشه گل للبس و عباعتن من اگر برم هر آینه همانا پوشیدن عباعت ای. این چادرهای سنگی و تبر رعیمی و چشم روشن بودن یعنی دل انسان خوش باشد اینکه انسان عبائه بپوشد لباس خشم بپوشه و چشمش گریان نباشه چشمش خندان باشه قررتول این اصلا کلمه قرد یقل به معنای سرد شدنه حتی میگم قررتول این یعنی چیزی که چشم انسان رو خنک میکنه سرد میکنه چرا چون چشم اگر بگریت گرم است انگار احساس میگونه انسان مخواد مثل کوره بشوست بلی چشم فلانی میگن فلانی قرغت و دارد یعنی چیزی که باعث میشه چشمش هیچ موقع نگریت. همیشه خنک باشد منظور کنایی از این که دلش خوشه میگه انسان اگر لباس خوشی بپوشه لباس خشنی بپوشه و چشمش خوشحال باشه دلش خوشحال باشه عینی اینی بشه. این میگه بهتر است برای من احب و دوست داشت یعنی تر از پیش من الیگ احب و الیگ من لفظ شکر بهتر است برای من از چی از پوشیدنه این لباس‌های شفاف این لباس‌های خیلی حریر باف و بدن نمایی که تو قصر تو میپوشان و دلم خوش میگن این عیاض رو گفت بعد تو خیلی دلی. به معاویه گفتش که قدر و شکم و گنده و خیلیست چیزایی قدر پیز بشک معاویه بیرونش کرد بعد رفت تو بازگیه همون بین انگاهی‌ها رو خودشون بیابان‌های اجاز، اونجا زائی و یزید رو بعد فرست و یزید رو آوردند و در قصر حالا للبس و عباعتن و تقردن حالا اگه به جای لفت مثلا لابس اسم فاید اشکال نداشت بهش چیه عطمی شد و ان هم نمیخواست مثال زلم و بعد لام کی بعد از لام کی یعنی لام تعلیل لام علت بعد از لام تحلیل هم ان میتونه در تغییر باشه اذا لام یخترم به زمانی که اون لام مختلن به دیگه نشده باشه چون اگه مختلنه به شد لعلا یعلمه یادتونه این نیست لعلا یکونه بودیم حتما ان باید چی بشه ذکر بشه دو تا دوتا لام یه جا جمع نشه توی رایی خوندیم همین هم ازالن یخترین بلا نحو اسلم تو لعدخول الجنه ده. لعدخوله خب معروب لام عرف جنه بر اثر فیل لن نمید باید ان تبدیل گرفت تا اینکه تبدیل به مستر بشه و اسم بشه و لام عرف جنه بتونه بر اثرش اصلا تو لعنت خلد. حالا اینجا میتونی بگه لأنادخولا. اگر لام و لا هر دو بودند. لام و لا بودند. ان میشه چی؟ وان و ان مقدر میشه وجوبن و وجوبن بعد از تا و ان به طور وجوبی در تغییر است بعد از یکی لام جهود لام جهود کده اون لام بود بعد از کانه منفی بعد از خبرش در بیاد به فیل مزاره و یا المسبوغت رو بکنه منفی اون لامیه که مسبوغ است ها؟ یعنی سبقت داده شده به یک کانه منفی یعنی یک کانه منفی برش صادقه چلوه ده نه و ما کان الله و لیو عزبه ما کان الله ما مامای نافیه کانفه الله اسمش لیو عزبه, هم بوده, عزبه, هم. در عزبه, هم. عزبه هم بوده لن یو عزبه این لامه جهور همیشه ان بعدش واجبه در در در ما کان الله و لیه و فرده همیشه لیو عزبه هم یو عزبه فیر زمیر الله فائل بوده لن یو عزبه تحریر به مستر میده میشه لتعذیری یا هم لتاعذیب هی جاهم یا... خب. این لتاعذیب که متعلق به عامل مقدر خبر می بعد از لام جه یک مورد دوم و او به معنا الا وقتی به معنای ادا باشد و او ای که به معنای ادا باشد یا الا ان باشه بعد از این دو تام در نه نحول ل نحو لا الزمن نکرد عین مثالیه که تو کتاب عوامل خوندی عوامل به این عین همین خوندی خوندید و اصلا یه بدونه یک ذره سر و توی فرق همین مثال لا نکر نکرد تو توضیح یعنی حقیقتا تو کتاب عوامل میسازم همین مثال ده. اصلا بدونه هیچ گونه بقول معنی دهی تصدیق نحو لا الزمن نکرد این لا نکر نکرد لام به من جوابه جواب اصمه یعنی والله لا الزمن نکرد به خدا هم. به تو میچسبم ولت نمیکنم مشخص او تو یعنی حقی تو